سلام، شما قسمت دوازدهم همه پادکست علیف رو میشنوید ما در این پادکست در هر قسمت یک نمایشنامه رو برای شما روایت میکنیم قسمت آخر فصل اول پادکست علف رسیدیم و نمایشنامه مهم مکبس اثر ویلیام شکسپیر آخرین نمایشنامه اینیه که در این فصل از پادکست خواهید شنید. خودم خیلی خوشحالم که تونستم از عهده ساخت یک فصل از دومین پادکستم بر بیام. شاید وقتی شروع می کردم خیلی خوشبین نبودم با این نظم و با این کیفیت بشه در کنار میدنایت که یک پادکست دیگه ساخت. اما فکر می کنم پادکست علف تو فصل اول هم اندازه کافی مخاطب داشت و هم به هدفی که من توی ذهنم در نظر گرفته بودم برای این پادکست رسیدیم و این بدون همکاری و کمک بچه که روی نمایش نماهای این فصل زحمت کشیدن اصلا امکان پذیر نبود. آخر پادکست بیشتر درباره باری نویسنده علف خود پادکست و اینکه فصل بعدی قرار کی بیاد و چه برنامه هایی داریم صحبت میکنم. مکبست رو گوش کنید و تا آخرش با من بمونید شکسپیر سال 1564 به دنیا اومده و سی و هفت از اون به جامونده که این تعداد رو در حد فاصله سال‌های 1590 تا 1613 نوشته شکسپیر مکبست رو در سال 1606 نوشته که با این حساب جز کارهای پایانی و دوران پختگی شکسپیر حساب میشه. شاید اعداد زیاد نتونم به ما بگن کجای تاریخیم برای همین به نظرم اشاره به چند تا واقعی تاریخی میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم دقیقا داریم درباره چه زمانی حرف میزنیم. در سالی که شکسپیر مکبس رو نوشته، یوهانس کپلر سرگرم دفاع از مدل خورشید مرکزی بود و اولین قانون خودش چرخش سیارات در مدارهای بیزوی به دور خورشید را نوشته و گالیله هم با کلیسا به مشکل خورده بود و ده سال بعد از این تاریخ در سال 1616 محکوم میشه همه این حوادث به ما میگه که روزگار شکسپیر روزگاری عجیب بوده درست زمان یک تحول تاریخی در همه ی علمی، فرهنگی و از همه مهمتر سیاسی. قبل از اینکه خوندن نمایشتامه رو شروع کنیم، اینو بگم که ما برای خلاصه نمایشتامه این قسمت تقریبا به تمام ترجمه های فارسی مکبس رجوع کردیم. البته ترجمه داریوش آشوری از انتشارات آگه رو منبع اصلی خودمون قرار دادیم و از ترجمه فرنگیس شادمان هم در کنارش، خیلی استفاده کردیم. همه کسانی که مکبست رو ترجمه کردن از مترجمان بنام هستند و من فکر می‌کنم بهمان یک خواننده میتونیم ترجمه هایی که از مکبست شده رو کلاً به دو قسمت و دو دسته تقسیم کنیم. ترجمه هایی که در اونها سعی شده به کلمات و جملات شکسپیر کاملاً وفادار باشند مثل ترجمه فرنگیس شاتمان و ترجمه هایی که بیشتر سعی کردن جنبه ادبی شکسپیر رو به فارسی برگردونن و مکبس رو کلمه به کلمه ترجمه نکردن مثل ترجمه استاد آشوری مشکل اصلی اینه که در هر نوع این ترجمه ها بسیاری از جملات گنگ میشن و روانی متن از دست میره و شما گاهی برای فهمیدن یک جمله یا پاراگراف باید دو یا سه بار اون رو بخونید کاری که ما در خلاصمون کردیم این بوده که هم سعی کردیم به متن وفادار بمونیم و هم تا حد امکان جزئیات رو جان اندازیم و لحنه ادبی نمایشنامه رو هم حفظ کنیم. بسیار در کنار هم داشتن و از دست ندادن هیچ کدوم از اینها کار سختی بود و این کار سخت رو امیر تهانی برای این قسمت انجام داده که قبلا هم نمایش سخت رو خلاصه کرده بود و، واقعا هم زمان برد و وقت گذاشت روی مکبس تا به اون چیزی که میخواستیم برسه. پس تا جای ممکن سعی کردیم جملات کاملا روان باشن و با یک بار شدن، فهمیده بشن و در این حال ویژگی های ادبی نمایشنامه رو هم حفظ کردیم حالا اینکه با تمام این ها چقدر موفق بودیم نکته ای که شما باید بعد از چیدن نمایشنامه به ما بگید از اونجایی که توی این نمایشنامه با شخصیت ها و مکان های مختلفی مواجه میشید اول از همه برخلاف روند همیشگی پادکست چندتا از این مکان ها و شخصیت ها رو معرفی می کنیم تا راحت تر نمایشنامه رو دنبال کنیم. اول از همه دانکن، پادشاه اسکاتلنده و دانل بین و مالکم هم پسرانش هستند. خود اسکاتلند هم به چندتا قلم رو تقسیم میشه که ما در این متن اسم سه تا قلم رو رو کادر. هر کدوم از این قلم روها هم رئیس خودشون رو دارن که ما توی نمایشنامه اونها رو به اسم سپهسالار میشناسیم. داستان از جایی شروع میشه که سپاه نروژ به اسکاتلند حمله میکنه و سپه سپهسالار کادور با اون همراه میشه و به دانکن پادشاه اسکاتلند خیانت میکنه. مکبس شخصیت اصلی داستان سپهسالار گلامسه و به همراه بنکو هم رزمش سپاه نورویج و مکدانلد رو شکست میده شخصیت دیگه ای که جایگاه مهوری در نمایشنامه داره مکدافه که سپه سالار فایفه و از یاران مکبس در شکست سپاه نورویج و مکدانلد. اسم های دیگه ای که میشنوید از اشراف زاده ها و بزرگزادگان اسکاتلند هستند و یه شخصیت غیر اسکاتلندی و تاثیرگذار در نمایشنامه هم سیوارد فرمانده نظامی انگلیسه. به غیر از اینا هر سالی درباره شخصیت ها، مکان ها، روایت خود نمایشنامه و قصه داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید. من اگر بتونم جواب میدم، اگر هم نتونم شاید به هر حال یه نفر پیدا بشه و بتونه جواب سوال شما رو بده. ممنون از این کلف رو گوش میکنید. بریم سراغ قسمت 12 قسمت پایانی فصل اول پادکست الف. شاهکار ویلیام شکسپیر، مکبس. هنگام قررش تندر سه جادوگر به قصد شور به دور هم گرد میآیند نخستینشان گوید دگربار کی گرداییم برای دیدار دومی گوید آن هنگام که این قوقا شود آرام یکی را بخت آید فراز و دیگری را رنج شود دراز و سومین گوید آنگاه که خورشید شود پست و به پشت کوه اندر است دوباره نخستین گوید کجا دومی گوید در بیابانی، سومین گوید برای دیدن مکبس، جادوگر یکم می گوید صدای گربه خاکستری برخواست. دومی گوید صدای وزق آمد و سومی که انگار آوایی شنیده است می های رسیدم. همگی با هم می گویند پلیدی پاک است و پاکی پلید. بپریم در مه و گردیم ناپدید. در یک اردوگاه نظامی دانکن پادشاه اسکاتلند با ملکم پسرش دانل بین و لناکس از بزرگزادگان آن دیار میرسند و همراهان به دنبالشان. دانکن مردی خونین را می بیند و از ملکم میپرسد او کیست از حال زارش پیداست که تازه از کارزار برگشته است. ملکم به دانکن میگوید، او سربازی است که دلاورانه جنگید و مرا از خطر اسارت رهانید و سپس رو به مرد میکند و از او میخواهد از نبرد بگوید و سرباز از جنگ میگوید. آشوبی برپا بود. در جنگ جنگاوران درمانده بر هم چنگ میانداختند و چکاوک شمشیرها بی سر انجام بود. مکدانالد شورشی شرارت در اون میجوشید و بخت روسپی را دربر میکشید. با این همه مکبس بر بخت ریشخند زنان با تیقی خونفشان تاخت و صف دشمن را درید و سر آن سرکش را برید و آن را بر باروی دژ بیاویخت. دانکن با شنیدن این دلاوری ها بر پسرمویش درود میفرستد و سرباز ادامه می دهد ای پاسشاه اسکاتلند، گوش فرادار، از همان دم که داد پاسخ فرومایگان را داد، سردار نروژی، فرصت را قنیمت دید و با لشگری تازه نفس بر ما شورید. دانکن می‌پرسد، مکبس و بنکو چه کردند. ترسیدند؟ سرباز پاسخ می‌دهد آری ولی حراسی که مگسی در دل اندازد هرچه از دلاوری هایشان بر زبان برانم از آنچه چه دیده دور می مانم. افسوس که زخم هایم، کمرم را خم می کنند. می‌گوید، زخم خونین و سخن پرتنین تو نشان از شرف دارد. و به سربازان دیگر میگوید تیمارش کنید و او را میبرند راس و آنگلس از بزرگزادگان اسکاتلند میرسند. لناکس با دیدن آنها میگوید تنها چشمان کسی که خبری شگفت در سینه دارد چنین میدرخشد راس به دانکن درود میفرستد و دانکن از او میپرسد که از کجا میآید راس میگوید از آنجایی که سر پرچم های نروژی سقف آسمان میسودند و سربازان ما دلسرد بودند از آنجا که پادشاه نروژ با سپاهی بیشمار به یاری سپه سالار فریبکار کادر به جنگ آمده بود که مکبس آن گرد آهنین بازو با آن سرکش رویارو شد و در ستیزی هولانگیز دستش بست دانکن از این خبر شادمان می شود و دستور می دهد سالار کادور کادر را بکشند و مکبس را لغبی سزاوار بخشند در بیابان رعد میقرد و سجادوگر جادوگر میرسند. جادوگر نخست از جادوگر دیگر میپرسد کجا بودی خواهر و پاسخ میشنود گراس کشی. جادوگر سوم از نخستین میپرسد تو کجا بودی؟ و پاسخ میشنود در راه زن دریانوردی بود دامنش پرزه بلود دانه ای خواستم از او گفت دور شو جادوگر بیااب رو اما من میدانم شوهرش کدام طرف است. به جانب حلب است همچون موشی خواهم تاخت و کارش را خواهم ساخت. جادوگران دیگر سوگند میخورند که بادها را برای یاری او بفرستند. اما او از آنان سپاسگذاری می کند و میگوید خودکینه خویش خواهد جست. صدای تبل می آید و جادوگر سوم با شنیدن صدای تبل می گوید صدای تبل با مکبس میرسد رسد از راه. جادوگران به گرد خیش میگردن تا جادو کنند. مکبس میگوید روزی را ندیده بودم چنین زشت و چنین زیبا. بنکو در حالی که از مکبس میپرسد تا فرس چقدر مانده است چیزی عجیب میبیند و حیران از می‌پرسد: میپرسد جولیدگان ژنده پوش زنده اید؟ به زنان میبانید اما بر چهره ریش دارید بگویید چیستید؟ جادوگران به مکبس درود میفرستند و هر یک. اون نویدی نو این کار را می‌کنند درود مکبس درود بر تائی سه پاه سالار گلامس درود مکبس درود بر تائی سه پاه سالار کادور درود مکبس درود بر تائی پادشاه بنکو به مکبس مینگرد. در حالی که او از این خبر رنگ به رخ ندارد از او می‌پرسد سرورم چرا به جای سرور هراسانی و سپس رو به جادوگران می‌کنند و می‌گوید شما را به خدا کیستید؟ زاده پندار مایید یا چنین که مینمایید بر همه کس آشکارید؟ اگر از نهان آگهید از سرانجام من نیز خبر دهید؟ جادوگران یک ها یک با او درود می فرستند و به بنکو میگویند ای بهتر از مکبس و ای کهتر از او اگرچه تو شاه نشوی اما فرزندانت صاحب جاه و گاه خواهند شد مکبس آشفته رو به جادوگران میگوید: هانه کم گویان میدانم که با مرگ پدرم گلامس از آنم است اما امیر کادر هنوز برگاه است و پادشاه بر سریر ای شما که در چنین بیابانی راه بر ما اید فرمان می دهم آن چه بگویید جادوگران ناگه ها ناپدید میشوند بنکو و مکبس به سان کسانی که به ناگاه از خواب پریشانی برخواستند دیده ها و شنیده های خود را واجه به واجه و لحظه به لحظه برای هم بازگو می کنند تا آنکه راس و انگس را می بینند که به پیشواز آنان می آیند راست به مکبس می گوید خبر زفرت به پادشاه رسید و او درباره نبرد های شنید پیکانیست پی در پی می رسند و از بیباکیت به او خبر میبرند. برند چشمه های خوشی در او جوشان است و چون نمی داند چه بگوید خاموش است انگس نیز به مکبس و بنکو میگوید که آمده اند آنان را به پیشگاه شاه برند و سپس با لقب سپه سالار کادور به مکبس درود میفرستند. بنکو با خود میگوید گوید نکنه چایاتین هم راست بگویند مکبس نیز حیرت زده می که در حالی که هنوز سپه سالار کادور زنده است او چگونه می بر جایش بنشیند؟ در پاسخ از رای شاه میگوید و سرانجام سپه سالار خیانتکار که جان در پی آز خواهد داد. مکبس به زمزمه با خود میگوید گوید سپه سالار کادر و سپه سالار گلامس بزرگترین هنوز در پی است و روبه انگس و راست میکند و با صدای بلند از آنان تشکر میکند و آهسته به بنکو میگوید آنچه چندی پیش پنداری بود اکنون آشکار شد. و من سپه سالار گلامس و کادر شدم تو نیز نمی که شاید پسرانت شاه شوند؟ بنکو پاسخ می دهد. اگر به سخنانشان دل ببندی چشم بر تخت شاهی خواهی دوخت سربازان سپاه سیاهی گاه راست می تا ما را به سوی تباهی بکشانند و سپس به سمت راست و انگس می روید مکبس با خود می گوید آنچه پیش آمد به داستان پادشاهان ها این وسوسه نه خوب است و نبد. اگر بده است چرا با نیکبختی هم همراه بود؟ و اگر نیک است این چه اندیشه های حراسناکی است که من بیباک را در گرفته است؟ ترس های رویارو کجا و خیال های هولناک کجا؟ اندیشه های جنایت که اکنون جز وهمی نیست، می نیست هستیم را می‌لرزانند. مکبس از گردش اندیشههای شوم در سرش شرم دارد و آنها را واپس میراند و از خود نمی داند. چند بار بنکو او را به حلقهشان میخواند اما گویی او نمیشنود تا اینکه سر برمیگرداند و به آنان میپیوندد و آهسته به بنکو میگوید در باب آنچه دیدیم نیک بیاندیش تا زمانی با هم سخن بگوییم بنکو با روی باز میپذیرد و هر چهار نفر به پیشگاه شاه میروند در فورس و در اتاقی از کاخ در شیپورها دمیده می شود و دانکن، پادشاه اسکاتلند و پسرش ملکم، دانل بین و لناکس و دیگر یارانشان وارد می شوند. دانکن از ملکم سرانجام سپه سالار کادر را جویا می شود و اینکه آیا اعدام شده است یا نه. ملکم پاسخ می دهد. کسانی که بر این کار گمارده بودیم هنوز باز نگشتند اما هستند کسانی که مرگ او را دیدند. میگویند به خاری فرو افتاده بود و به زاری خواستار بخشش بود مرگش برازنده تر از زندگی پستش بود زیرا مرد و هیچ از این دنیا نبرد دانکن میگوید آه راهی نیست که از نهان آدمیان آگاه شوی من او را دوست خود میدانستم در این لحظه راس انگس مکبس و بنکو وارد میشوند دانکن به مکبس درود میفرستد و به او میگوید تو چنان سزاواری که پادشاهان در ستایشت هر چه کوتاهی کوتاهی است پاداش پادشاه در حق من این است که وفاداریم را بپذیرد دانکن از رأی بلند مکبس خورسند می شود و رو به بنکو می گوید آنچه درباره مکبس گفتم بر قامت نیز شایسته است بنکو از دانکن سپاسگزاری می کند و دانکن هر دوتن را در آغوش می گیرد دانکن که بر دشمن چیره شده است چهره اش از شادی میدرخشد، و در جمع یاران ملکم فرزندش را جانشین خود می‌خواند و به او لقب امیر کامبرلند می‌دهد و سپس ادامه می‌دهد که برای بزم این روز فرخنده به سرای مکبس خواهند رفت مکبس به پادشاه می‌گوید که باید زودتر برود تا مژده آمدن پادشاه را به همسرش برساند دانکن او را به نام سپسالار کادور می‌خواند و به او اجازه می‌دهد امیر کامبرلند این است که راه بر من توان بست یا باید از آن رست ای ستارگان دیده بر من ببندید تا درون تیره مرا نبینید بسته با چشمانم آنگاه که دستانم در کارند و باز باد آنگاه که کار کرده شد تا حراسان به آن بنگرند مکبس بیرون می روید دانکن رو به بنکو می کند و از سرشت پاک مکبس می گوید و اینکه او را تا به چه اندازه دوست خود می شمارد. در برابر کاخ مکبس همسر مکبس تنها ایستاده است و نامهای در دست دارد لیدی مکبس نامه را میخواند در روز پیروزی رهبر ما بستند به آدمیان نمیمانستند آیند و روند روزگار را میدانستند چون خواستم از سرنوشت خویش بیشتر پرسم از پیش چشمم خواستند. از گفت ایشان در شگفت بودم که یاران پادشاه به پیشواز رسیدند و مرا به نام سپهسالار کادر و کادور خواندند اینک تنها پادشاهی مانده است. گفتم ای قم خارم تو را زودتر از این خبر آگه کنم. اما زبان نگهدار تا چه پیش آید؟ خدا نگه دارد. لیدی مکبس با خود می گوید ای همسرم ای سپه سالار گلامس و کادور چنان که نویدت دادن بر تخت پادشاهی خواهی نشست. اما می که سرشت پاکت تو را از شرارت هایی که باید در این مسیر بورزی تا به اهدافت دست یازی دور سازد. تو بلند پروازی اما آن را نیک خواهی. زودتر به اینجا بیا تا شور و شر را در تو ریزم و حراسایت را بتازانم. سپس یکی از ملازمین به پیش او میآید و خبر آمدن مکبس را میآورد. لیدی مکبس نخست باور نمی کند. اما ملازم میافزاید که یکی از همراهان مکبس به تاخت به کاخ آمده تا خبر را زودتر برساند و مکبس نیز هران می رسد. لیدی مکبس ملازم را مرخص می کند و با خود می گوید بوم شون بر سرسرایم سرود مرگ سر میدهد. ای ارواح، مهر را بر دلم راه ندهی و آن را به سان سنگ سخت کنید که کاری سهمگین در پیش است. سپس، مکبس را می که به سوی او میآید. او مکبس را به نام سپه سالار گلامس و کادور درود می گوید. و می در روزهای نبودنش نامه هایش او را دلگرم می کرده است. مکبس به همسرش میگوید که پادشاه در راه آمدن است و لیدی مکبس از او میپرسد تا خواهد ماند و پاسخ میشنود تا فردا. و سپس به مکبس میگوید او فردا انبار خورشید را نخواهد دید سپس سالار من برای فریفتن زمانه هم رنگ زمانه شو چون گل بنمای اما چون ماری در زیر آن بمان کار امروز را به من بسپار و تو پاسچایی کن مکبس از همسرش میخواهد که در زمانی دیگر به این گفتگو بپردازند و لیدی مکبس نیز از او میخواهد تا آرام باشد و چهره دگرگون نکند در شیپورها دمیده می شود و دانکن، ملکم، بنکو و دیگر یاران و ملازمانشان به سرای مکبس می رسند دانکن و بنکو درباره هوای دلپذیر کاخ زیبای مکبس با هم سخند می که لیدی مکبس را می بینند دانکن از او برای این میهمانی سپاسگذاری می کند لیدی مکبس می گوید آنچه از دستش برمیآید در برابر جانساری های سربر این سرا هیچ است و می که هموار دو پادشاه خواهد بود. دانکن از او میپرسد که مکبس کجاست و از او می خواهد دستش را بگیرد و او را به پیش مکبس ببرد و با هم به درون کاخ می روند. در تالار زیافت حاضر است مهمانان به دور میز جمع شدند و خوراک میخورند. و مکبس بیرون از تالار ایستاده است و تنها هم همه مهمانان شنیده می شود مکبس با خود می گوید اگر می به یک بار کار او را بسازم و کام روا گردم دم ضربتی بر او می زدم. اما داد روزگار چنان است که همان جام شرابی که به زهر آلوده این به کام ما می ریزد. او در اینجا آسوده است من هم از خیشان اویم و هم از بندگانش و در اینجا میزبان هم از دیگر سو او چنان خوشخوست که اگر خونش بر زمین ریزد فرشتگان آسمان نیز به دادخواهی برخواهند خواست. آه که بلندای توانم از آنچه خواهانم کوتاهتر است. سپس لیدی مکبس را می بیند و از حال مهمانا میپرسد. پرسد. لیدی مکبس از او دلیل غیبتش را جویا می شود و به او میگوید پادشاه انتظارش را می کشد. مکبس به همسرش می گوید اکنون که پادشاه مرا جاهی نوبخشیده، نیکتر است که آن را نگاه دارم نه آن که آن را برباد دهم لیدی مکبس خشمگین می گوید چه شده؟ آرزوهایت در خواب است و دلیریت خمار چرا از رسیدن به آن چه در دل داری میترسی؟ از این پس عشقت را چنین میشمارم. در گفتار سخت و در کردار سست مکبس پاسخ می دهد. من دل نبردهای مردانه دارم نه این لیدی مکبس می افزاید. پس از مردی برای والاتر شو همان کسی شو که این نامه ها را برایم نوشت نیک میدانم که تو گرفتار نیکی هایش گشته ای اما سوگند خود نشکن بند از خیش بیفتند و رها گرد. مکبس در مانده میپرسد و اگر نشد، لیدی مکبس پاسخ میدهد چگونه نشود تو تنها دست به کار شو دانکن شب خوب خواهد خوفت. من به یاری شراب خرد نگهبانانش را می رو بایم تا آنان بار گران گناه مرگ شاه را بردوش کشند. مکبس نقشه همسرش را ادامه می دهد. من با خنجر پاسبان او را می کشم. آیا همه نخواهند گفت کار آنان است؟ لیدی مکبس می گوید، چرا که نه وقتی ما فقان دهیم مکبس مسمم شده و می گوید من آمادم. و رو به همسرش می چهرت این نقاب قلبت را خندان کن. تا خواهش های درونیت پنهان شود. بنکو و پسرش فلیانس گفتگوکنان به باغ کاخ می روند و از آسمان شب زمان را می سنجند بنکو شمشیرش را به فلیانس میدهد و به او می گوید که اندیشه ای او را از خفتن باز می دارد که صدایی می شنود شمشیرش را از پسرش می و می پرسد کیست؟ مکبس با ملازمش می رسند و مکبس می گوید دوستی بنکو می پرسد سرورم چرا به بستر نرفتید پادشاه دیریست که خفته است و از شاه می گوید که از مهمان نوازی مکبس و همسرش بسیار سپاسگذاری کرده است مکبس از او تشکر می کند و بنکو ادامه میدهد که دیشب نیز بار دیگر خواب جادوگران را دیده است مکبس میگوید که دیگر به آنان نمیاندیشد اما اگر او زمانی فرصت داشت آماده است در این زمینه سخنگویند. بنکو میپذیرد. مکبس برای آنان خوابی خوش آرزو میکند و فلیانس و بنکو از پیش او میروند. مکبس به ملازمش میگوید که به بانو خبر دهد هر زمان که شراب آماده شد بر زنگ بکوبد. ملازم اطاعت کرد و میرود. مکبس خنجری در آسمان میبیند و میگوید این چیست؟ خنجری در پیش چشمم و نه در چنگم؟ آیا این دشنه زاده ذهنی پریشان است یا در واقع نیست هست؟ حال از دستش خون میچکد نه نه چنین نیست اکنون چه جای است؟ باید زودتر بروم گرمای کار از سرمایه سخن سردی میگیرد در این هنگام صدای زنگ را می شنود و میگوید گوید ای دانکن این صدای ناقوس مرگ توست که تو را به بهشت میخواند یا به دوزخ. مکبس می رود و لیدی مکبس وارد می شود. او میگوید گوید آنچه آنان را خوابانده مرا برف روخته. در جام شراب پاسبانان چنان دارویی ریختم که در میان مرگ و زندگی گیر افتادند. صدای مکبس را میشنود شنود که پشت سر هم میپرسد کجاست؟ کیست؟ لیدی مکبس با خود میگوید گوید نکند از خواب برخواسته باشند نکند مکبس خنجر را نیافته باشد مکبس با دستانی خونین به پیش همسرش میآید. آید مکبس به او میگوید که کار را تمام کرده است سپس از او میپرسد صدایی نشنیدی لیدی مکبس پاسخ می دهد تنها ناله بوفی مکبس هر آسان می میگوید من صدایی از دومین اتاق شنیدم و میپرسد در دومین اتاق چه کسی خوابیده است و پاسخ میشنود دونالد بین مکبث به دستان خود مینگرد و میگوید چه هولناک و نگران می در خواب کسی خندید و دیگری فریاد زد جنایت و من گوش سپردم تا آنکه یکی گفت خدایا مرا بیا مرز و دیگری گفت آمین و من کسی که بیش از همه نیاز به بخشش داشت یارای آمین گفتن نداشت و آشفته ادامه میدهد صدای دیگری نیز شنیدم که باین برآورده بود که سپه سالار گلامس دست به خون آلود لیدی مکبس هر بار تلاش می کند در میان سخنان مکبس او را آرام کند اما نمیتواند. تا آنکه به او می گوید، این اندیشه ها را از خود دور کن چه جز از دیوانگان بر نمیآید. و می که او باید برود و جامعه نگهبانان را خونین کند. اما مکبس روی بر برمیتابد و نمی رود. لیدی مکبس به او میگوید، ای بزدل، مردگان تنها نقشی بر دیوارند و تنها کودکان از آنان می ترسند. و خود می رود تا نقشه را پایان دهد. مکبس پریشان است و با هر صدا از جا میجهد. لیدی مکبس می رسد و به مکبس می گوید حالا رنگ دستان من نیز به رنگ توست. که صدای درکوفتن شنیده می شود. مکبس و همسرش می روند تا دستانشان را از خون بشویند و جامعه خواب بپوشند. مکبس در این هنگام میگوید گوید کاش مرا یارا از یاد بردن خیش بود. کاش صدای این درکوفتنها خواب از چشمان دانکن می رو بود. دربان سخت مست است. صدای های مداوم را می شنود و از جا بر نمی خیزد. و هر بار سخن نامربوطی به کسی که در پشت در است میگوید تا آنکه از جا بلند میشود و افتان و خیزان در میگشاید و مکداف و لناکس را میبیند و بعد از دیدن آنها سخنان آشفته خود را ادامه می دهد تا اینکه مکداف از دربان میپرسد آیا سرورت بیدار است در این هنگام مکبس خود میرسد لناکس و مکداف هر دو به مکبس درود میفرستند و مکبس نیز پاسخ میگوید. گوید. مکداف به مکبس میگوید آیا پادشاه برخواسته است؟ من برام بودم که پادشاه را صبح زود از خواب بیدار کنم و همکنون از آن زمان گذشته. مکبس میگوید که هنوز پادشاه بیدار نشده است اما مکداف را به بالین راهنمایی خواهد گرد. مکداف از او سپاسگذاری می کند و به اتاق پادشاه میرود. رود. لناکس از مکبس میپرسد. پادشاه امروز می رود و پاسخ می شنود آری. خود چنین فرموده است. سپس از احوال خیش در شب پیش می گوید. دیشب شبی پریشان بود. بوی آسمان می نالید و زمین تب زده بود و می لرزید. مکبس نیز می گوید برای نیز چنین بوده است تا اینکه مکداف زاریکنان و فریاد زنان می رسد. لناکس و مکبس هر دو از او می چه شده؟ مکداف خبر مرگ پادشاه را به آنان می‌دهد. لناکس حیرت زده میپرسد تا بداند درست شنیده است و مکبس نیز به پیروی از او چنین می کند. مکبس و لناکس به اتاق پادشاه می روند. مکداف می گوید بروید با چشمان خیش بنگرید و سپس فریاد زنان می گوید برخیزید و در شیپورها بدمید. ای آنان که در خواب نازید. از این مرگ دروقین برخیزید و بر چهره مرگ راستین چشم دوزید. لیدی مکبس با صدای می میرسد و از چرایی هنگامه میپرسد. مکداف نمیداند چه بگوید که بنکو میرسد و به بنکو میگوید شهریار من را کشتند. بنکو باور نمی کند و لیدی مکبس خود را آشفته می نمایاند. مکبس و لناکس برمیگردند. مکبس میگوید اگر چندی پیش مرده بودم نیکبخت بودم این دنیا با این همه درد به گودی میماند. دانل بین پسر دانکن میگوید چه شده؟ مکبس خبر تلخ مرگ پدرش را به او می دهد. میگوید چگونه؟ لناکس پاسخ می دهد. این گناه گران بر گردن نگهبانان است. جان پادشاه را به دیوانگانی سپردیم که با جامعه و دستان خونین خیره به ما نگریستند. مکبس با حسرت میگوید که آنان را کشته است مکداف از او میپرسد چرا چنین کرده و مکبس پاسخ می دهد خشمی که خون را در رگم جوشاند، خردم را نیز پوشان تا نفهمم چه میکنم کیست که بتواند بگوید که اگر به جای من بود جزین میکرد لیدی مکبس بر زمین میافتد و مکداف میگوید بانو را دریابید در این میان ملکم و برادرش دانل بین آهسته با هم گفتگو میکنند ملکم به دانل بین می گوید چرا سخن نمی این مجلس سوگواری ماست. دانل بین می گوید چه بگویم که مرگ در کمین ماست. باید به جای گریستن گریخت. بنکو پیشنهاد می دهد که جامعه رزم بپوشند و سپس دور هم گرد آیند و در باب این ماجرا سخن گویند. همه با او موافقت می کنند و می روند جز تن. ملکم و دانل بین. پسران دانکن. آنها که گوی دانستن این زاری تنها نمایشی است بر آن میشوند تا بگریزند ریزند و با هم عهد می کنند که ملکم به انگلستان برود و دانال بین به ایرلند تا از خطر ایمن بمانند. در روزی شگفت تیره و در مقابل کاخ مکبس پیرمردی همراه با راس میرسد. رسد. پیرمرد میگوید گوید درتناکی این چند شب رنجهای هفتاد ساله عمرم را به سخره گرفت. راس با او موافقت می کند و به آسمان مینگرد و میگوید حوادث چنان خونین بود که گویی خورشید از شرم رویش را پوشانده یا تیرگی بر روشنایی روز چیره گشته است. در میان صحبت های راس و پیرمرد مکداف می رسد. راس از او میپرسد: آیا دانستن چه کسی دست به خون پادشاه آلوده است؟ می میگوید نگهبانان به فرمان پسرانش؟ زیرا آنان گریختند راس به مکداف می گوید پس مکبس تاج شاهی بر سر خواهد گذاشت و مکداف حرف او را تایید می کند و می گوید که او همکنون نیز ردای پادشاهی برتن کرده است سپس مکداف و راس پیرمرد را به درود می گویند و پیرمرد به درون کاخ می رود و آن دوتن به فایف سرزمین مکداف آزم می شود. در تالار اصلی کاخ پادشاهی بنکو تنها ایستاده است و با خود میگوید تو اکنون هر آنچه هستی که پیشتر رویدت داده بودند مبادا برای به چنگ آوردن این جاه گناه بسیار کرده باشی اما اگر آن جادوگران راست گفته باشند که در حق تو گفتهاند پس پسران من نیز نسل در نسل بر سریر پادشاهی خواهند نشست اما بس است هیچ نگو با صدای شیپور، مکبس و لیدی مکبس هر دو با جامعه شاهوار، همراه با لناکس، راس و دیگر ملازمان و همراهان می رسند. مکبس و همسرش هر دو با روی خوش به بنکو خوش آمد گوید. بنکو گوید. سفری است و در کاخ نیز بزم پادشاهی برپاست. مکبس از بنکو می که سوگند بخورد که زود برخواهد گشت و در این زیافت خواهد بود. کو میگوید که در این امر کوتاهی نخواهد کرد. مکبس میافزاید که هنگام برگشتنش باید درباره اداره حکومت و پسران شورشگر دانکن سخن گویند. و بعد از بنکو خداحافظی می کند و دیگر یارانش را نیز بدرود می گوید و از آنان میخواهد که خود را به مهمانی برسانند همه می روند به جز تن مکبس و خادمش. مکبس به خادمش می گوید آنان را نزد من بیاور و خادم می رود. مکبس با خود می گوید حراس از بنکو جانم را می مکت. او هم دلیل است و هم هوشیار. به یاد دارم آنگاه که آن خواهران از پادشاهیم گفتند او خروشید و خواست از آینده نیز بگویند تا آنکه به او مجد دادند پسرانت وارث پادشاهی خواهند بود. و اگر چنین باشد من برای خوش آمد فرزندان بنکو خون ریختم. چنین مباد؟ سرنوشت برخی زبامن به در این هنگام دو مرد خشمگین از بنکو به نزد مکبس می آیند مکبس از آنها می پرسد که آیا درباره سخنانش نیکندی و می آیا اکنون فهمیدن که شوربختی و خاریشان در زندگی به خاطر وجود بنکوست؟ هر دو مرد سخن مکبس را تایید می کنند و مکبس ادامه می دهد آیا توان ستاندن جانش را دارید؟ یکی از آن دو مرد پاسخ می دهد من چنان از زجر زندگیم در رنجم که میخواهم کینه خود را از دنیا بستانم و مرد دیگر نیز سخن او را تایید می کند. مکبس می گوید من نیز چون شما به خون بنکوتش نم هرچند می توانم او را از میان بردارم اما مهر یارانم مرا از این کار باز میدارد. پس شما را برگزیدم تا یاریم کنید. هر دو مرد میگویند در خدمت او خواهند بود. مکبس ادامه می دهد دلاوری از چهره شما میتابد. یادتان باشد که او باید شب و در جایی دور از قصر کشته شود. به همراه پسرش فلیانس. همچنین از این ماجرا نباید گردی بر دامن من بنشیند. و سپس به آنها میگوید که بروند. اما زیاد دور نشوند تا خبرشان کند. دو مرد میروند. مکبس نیز اندیش کنان از در دیگری بیرون میرود در اتاقی دیگر لیدی مکبس از خدمتکارش میپرسد که آیا بنکو از کاخ رفته است و پاسخ میشنود آری اما شب باز می گردد. سپس به خدمتکارش دستور می دهد تا همسرش را به نزدش بخواند خدمتکار می رود و لیدی مکبس با خود می گوید کام روایی هیچ است اگر ناخرسند باشی مکبس می رسد. لیدی Ladyدی مکبس از او میپرسد چرا چنین آشفته آنچه را که چاره ای ندارد باید از یاد برد. مکبس می گوید ما مار را زخم زده ایم. نکشته ایم. و مار زخم خورده خشمگین تر برخواهد گشت. خوشا به حال دانکن که آسوده از هراس های زندگی در گوری خفته است. لیدی مکبس از او می آرام باشد و مکبس پاسخ می دهد. نیز آسوده باش. در بعضم به گاه دیدن بنکو لبخند بر رخسار نشان و زبان به خوشایند او خوشایند گردان. در این زمانه باید چهره را نقاب دل کرد. آه همسرم. سرم سرشار از اندیشه های زهراگین است. هیچ می دانی که بنکو و پسرش زنده اند؟ لیدی مکبس پاسخ میدهد دهد. آری ولی جاودان نیستند. مکبس به همسرش می گوید اکنون شادمان باش که چون شفت فرار رسد اندوه ما به سر می رسد. لیدی مکبس میپرسد مگر چه اتفاقی خواهد افتاد و مکبس پاسخ میدهد؟ در پی دانستنش نباش. تنها بدان سرانجام کار مرا آفرین گویی و سپس از همسرش میخواهد با او برود. در راهی که به کاخ می رسد سه مرد ایستادند و هر سه سودای کشتن بنکو را در سر دارند. دو مردی که پیشتر با مکبس سخن گفته بودند به فرد سوم بدگمان می شوند و از او می پرسند که چرا با آنان آمده است و اونیز پاسخ می دهد که دستور مکبس است. دو مرد میپذیرند و در انتظار بنکو میمانند تا آنکه صدای بنکو را میشنوند که مشعل به دست از اسب خود پیاده میشود و با پسرش به سوی کاخ میروند. سه مرد به فلیانس و بنکو نزدیک میشوند. کسی از میان آنها مشعل را خاموش میکند و هر ستن بر سر بنکو میریزند. بنکو خطاب به پسرش فریاد میزند. خیانت! خیانت پسرم! زود بگریز! شاید تو بتوانی کین مرابستانی فلیانس میگریزد و سمرد اندیشناک از این که پسر بنکا از دستشان جسته است به سوی مکبس می روند در مجلس مهمانی مکبس لناکس و دیگر یاران و همراهان می رسند و مکبس از آنان می خواهد به دور میز بنشینند و شراب بنوشند لیدی مکبس بر صدر مجلس است اما مکبس برای نشستن جایی را در میان مهمانان برگزیده است. در این هنگام یکی از قاتلان فرا می رسد. مکبس از پیش مهمانان به سوی قاتل می رود. قاتل نخست خبر مرگ بنکو را میدهد و پس از شادمانی مکبس از گریختن فلیانس می گوید و مکبس بر افروخته می گردد. مکبس می گوید آنی از بند حراس هایم آزاد شدم اما باز آن عذاب در دلم زبانه می کشد. سپس از قاتل میپرسد که آیا یقین دارد بنکو کشته شده است و او پاسخ میدهد خود زخمهای کاری بر تنش را دیده است مکبس میگوید مار مهتر آرمید و اما مار کهتر رهید تا از گزند نیش زهراگینش نیاسایم مکبس قاتل را مرخص می کند و خود به سوی میهمانان می‌رود. لیدی مکبس از همسرش می‌خواهد که از مهمانان دوری نکند و به جم پیوندد. مکبز میپذیرد پذیرد لناکس از مکبز می خواهد که بنشیند مکبز رو به جمع می کند و میگوید که جای بنکو در این زیافت خالی است و امیدوار است اتفاقی برای او رخ نداده باشد زمانی که می خواهد بنشیند شگفت زده میگوید که دور میز جای خالی نیست لناکس جای خالی به او می دهد مکبز ناگاه در آنجا شبه خونالود بنکو را می بیند و می خروشد. چه کسی چنین کرده است؟ مکبس در برابر دیدگان مهمانان با روح سخن میگوید و او را از خود دور می کند. راس از همه میخواهد که برخیزند و بروند و پادشاه را تنها بگذارند. لیدی مکبس از همه میخواهد بمانند و بنشینند و به آنها میگوید که پادشاه از جوانی چنین بوده است و گاه خیال یا شفته بر او چیره می شده است و می به اون نگریید، او را میرنجانید. و سپس آرام به مکبس میگوید: آیا تو مرد نیستی؟ مکبس پاسخ میدهد آری هستم چنان مردی که به منظره‌ای مینگرد که شیطان توان دیدنش را ندارد لیدی مکبس به او پاسخ می گوید، چه میگویی اینها همه نقش ترس توست مگر تو نبودی که از دشنهای در هوا می‌گفتی که تو را به پیش دانکن میخواند حراسهایت به داستانی میماند که مادری با آن کودکانش را میخواباند به چه مینگری مکبس درمانده است نمیتواند در باری آنچه میبیند سخنی بر زبان براند یا آن را به کسی بنمایاند. شبه ناپدید می شود. لیدی مکبس به همسرش میگوید دیوانگیت مردانگیت را روبوده مکبس میگوید از دیرباز اگر مردی زخمی گران بر تنداش میمرد. اما اکنون مردگان از دیار مرد برمیخیزند. شگفتا لیدی مکبس میکوشد خیشتنداری کند و از مکبس میخواهد بنشیند. مکبس نیز آرام گشته و میگوید ناگاه از یاد بردم کجایم. دوستان من نگران نشوید. من چندیست ناخوشم و نزدیکانم نیز میدانند دانند. سپس جام شراب را به دست می گیرد و از یارانش میخواهد به شادی همگان بنوشند که ناگاه شبه باز می گردد. مکبس دیوان وار به هوا چنگ میازد تا شبه را از خود دور سازد. لیدی مکبس باز میکوشد مهمانان را آرام کند. مکبس خطاب به شبه میگوید: من مرد میدانم من ببر هیرکانم من از هیچ چیز نمی حراسم رخ به گردان آنچه میخواهی شو جز اینکه هستی به زندگی برگرد اما به نبرد من میا دور شو دور شو شبه ناگهان ناپدید می شود و مکبس شادمان میگردد. لیدی مکبس به زمزمه به همسرش میگوید: آفرین ای شمان را تباه کردی مکبس میگوید. در شگفتم که چگونه چنین منظری رنگ از چهرهٔ من برد اما سرخی رخسار شمایان هنوز برجاست راست میپرسد کدام منظر لیدی مکبس از همسرش می‌خواهد چیزی نگوید و از مهمانان نیز میخواهد در ترک مجلس بشتابند مکبس آشفته است و با خود سخنانی زمزمه کند. از لیدی مکبس میپرسد چه وقت از شب است همسرش پاسخ می‌دهد، آنگاه که شب و روز درگیر و دارند آنگاه که ندانی شبست یاروز. یا روز مکبس به همسرش میگوید که مکداف نیز به مهمانی نیامده است همسرش از او میخواهد کسی را نزد او بفرستد و مکبس نیز میگوید آری خواهم فرستاد اما پیش از آن پگاهان به پیشگاه خواهران جادوگر خواهم رفت باید از چند دو چون آینده بپرسم اکنون که در دریای خون غرقم دیگر جای ایستادن نیست باید پیشتر رفت لیدی مکبس از او میخواهد که با او بیاید و بخوابد مکبس میگوید آری میخوستم ترس من از تازهکاری است باید پخته تر شوم در بیابان سه جادوگر میآیند تا هکیت خدای جادوگران را ببینند جادوگر نخست به هکیت میگوید چرا خشمگینی و هکیت میخروشد که چرا بی حضور او مکبس را از سرنوشت خیش آگاه ساختند و به آنان میگوید آماده باشید که مکبس هر آن میرسد و از آینده می‌پرسد خود را به هزار افسون بیارایید و چنان کنید که با آرزوجویی خرت را خرد شمارد و ترس و مرگ را هیچ انگارد برای آدمی زادگان بزرگترین دشمن ایمن انگاشتن خیش است هکیت می رود و جادوگران نیز از پیش می روند در جایی از اسکاتلند لناکس و یکی دیگر از اشراف زادگان اسکاتلند دیدار می‌کنند لناکس به او میگوید که به درستی اندیشهایش پی برده است و سپس با لحنی استهزا آمیز و با تمسخر میگوید دانکن را پسرانش کشتن زیرا گریختن و بیگمان را نیز هنگام گردش دیدگاه شبش پسرش کشته است زیرا او نیز گریخت جگر مکبس نیز از مرگ دانکن سخت سوخت مگر نگهبانان نگهبانان فروماایی را دردم نکشت شنیدم مکداف نیز از اسکاتلند گریخته است و مکبس نیز بسیار خشمگین است. شما می دانید کجاست؟ مکداف را می گویم. اشرافزاد پاسخ می دهد. پسر دانکن در انگلستان مهمان ادوارد پادشاه آن دیار است و مکداف نیز آنجاست تا از ادوارد لشکری از روی کینهجویی گرد آورد و به سوی مکبس بیاورد. امید دارم در این کار پیروز شود. پادشاه نیست چنان از این خبر برآشوفته است که در کار لشکر است. لناکس نیز برای پیروزی مکداف آرزو می کند و هر دو می روند. در غار، آتشی در میان آن شراره میکشد و دیگی بر سر آتش میجوشد جادویران گرداگرد دیگ آواز میخوانند و در دیگ چیزهای عجیب از مار مرداب تا زبان افعی میریزند تا افسون کنند و با هم میخوانند دوچندان دوچندان بلای دردمندان فروزان باد آتش دیگ جوشان هکیت نیز میرسد و به جادوگران که در کار جادویند درود میفرستد و میرود. جادوگر دوم میگوید که از سوزش سر انگشتش دانسته است که همینک کسی میرسد. در را میگشایند و مکبس وارد میشود. و میپرسد: "های جادوگران، در چه کارید؟" و پاسخ میشنود: "کاری بینا. مکبس از آنان میخواهد سوگند بخورند که راست میگویند و سپس به آنان میگوید هرچند میدانم که باید بند از باتها بکشایید و بر کلیساها فرو کوبید اما به من از چند و چون آینده بگویید جادوگران از او میخواهند پرسش هایش را بپرسد جادوگر اول از مکبس میپرسد که آیا میخواهد سرنوشتش را از آنان بشنود یا از استادشان مکبس میگوید استادتان را نزد من بخانید. جادوگران خون خوکی ماده را که نه فرزند خود را خورده در دیگ میریزند و او را میخوانند سری چون سر مکبس با کلاه خودی از دیگ بیرون میآید جادوگران از مکبس میخواهند بشنود و هیچ نگوید شبه به او میگوید از مکداف بگریز و فرو میرود اما جادوگران به او میگویند باید منتظر شبه دیگری باشد. شبی دیگر که به مانند کودکی خونالوده است از دیگ بیرون میآید و به او میگوید بیباک باش که هر که زاده از زهدان زنان باشد به تو زیان نرساند و سپس فرو می مکپس با خود میگوید پسنده بهمان مکداف چون تو نیز به مانند هر انسان زاده از یک زنی مکبس شبهی دیگر میبیند و میپرسد این چیست که بر پیشانی کودکانش نگین تاج پادشاهی میدرخشد. جادوگران از او میخواهند سخنش را بشنود. شبه سوم به مکبس میگوید دلیر باش و از هیچ نترس که هیچکس بر تو چیره نشود مگر که جنگل برنام به راه افتد. مکبس خورسند است. چه است که به درختان فرمان دهد ریش از جرفایی خاک برآورند و راه روند و این یعنی مکبس در هم نخواهد شکست اما اندیشه ای او را میازارد از جادوگران میپرسد آیا پسران بنک و خواهند شد؟ جادوگران از مکبس میخواهند که بیش از این نپرسد اما مکبس پافشاری میکند دیگ در زمین فرو میرود به خواهش جادوگران هشت پادشاه میرسند. چهره هر یک بسان دیگری است و آخرینشان در دست آینه دارد و در پیشان بنکو روان است. مکبس به دیدن آنان در میماند و در آینه آخرین نفر سلسلهی بی پایان از پادشاهان را میبیند. سپس بنکو ریشخند زنان با اشاره نشان میدهد که این نسل از اوست. سپس جادوگران رقصان به دور هم می گردند و همه چیز ناپدید می شود. مکبس حراسان سر میچرخاند تا جادوگران را بیابد. کلناکس میرسد و به درون قار می آید. و به مکبس می گوید مکداف گریخته است. مکبس پاسخ می دهد. دیگر همان می کنم که از سرم میگذرد. زین پس پندارم و کردارم یکیست. به فایف خواهم رفت و همسر و فرزندان مکداف را از دم تیغ خواهم گذران بی هیچ درنگی در فایف و در کاخ مکداف راس و لیدی مکداف گفتگو می کنند لیدی مکداف از راس میپرسد که مکداف چه کرده است که چنین گریخته است راس از او میخواهد که صبر پیشه کند لیدی مکداف می افضاید. در این هنگام گریختن دیوانگی است او ما را خائن می نمایاند. راس از او میپرسد رفتنش از ترس بود یا خرد و لیدی مکداف خشمگین پاسخ میدهد، از ترس وگرنه خانوادهش را در دیاری که از آن می‌هراست تنها نمی‌گذاشت راس از او می‌خواهد خیشتندار باشد زیرا مکداف خردمند دستو می‌داند که چه کند و از روزگار می می‌گوید که حراس با هستی آدمی درآمیخته و او را گزیدی برای گریز نیست سپس لیدی مکداف را بدرود می میگوید و میرود لیدی مکداف پسرش را میبیند و به او میگوید بدون پدر چگونه خواهی زیست پسر پاسخ میدهد چون پرندگان هر آنچه به دست آورم میخورم و باز مادرش میپرسد از دام نمیترسی پسر پاسخ میدهد برای پرندگان کوچک دام نمیگسترند اما پدر نمرده است زیرا اگر مرده بود تو میگریستی مادر میگوید عجب هم خوردی و هم زیرک پسر میپرسد پدر خائن است مادر تایید میکند پسر باز میپرسد خائن کیست مادر پاسخ میدهت آنکه پیمان ببندد و آن را بشکرد باز میپرسد سرانجامش چیست مادر پاسخ میدهد مردان شریف او را به دار می آویزند پسر میگوید چه بیخردند خائنان که اگر گرد می آمدند می توانستند مردان شریف را براندازند. مادر از سخن فرزند لبخند میزند و میگوید چه یاوه ها که به هم میبافی پسرک ناگاه پیکی به پیش لیدی مکداف میرسد و از می میخواهد که کودکان خود را بردارد و بگریزد و خود سراسیمه میرود لیدی مکداف میگوید به چه گناهی باید بگریزم به کجا اما اکنون به یاد میآورم که در این دنیا ستم دست و نکویی نکوهیده قاتلان وارد می شوند لیدی مکداف می پرسد کیستید؟ آنان از او می پرسند که شوهر خائنش کجاست؟ لیدی مکداف پاسخ می دهد امیدوارم در چنان جایی پلید نباشد که چون تویی بتواند به آن راه یابد پسرک نیز فریاد زنان به قاتلان می گوید دور شوند اما قاتلان در برابر چشمان مادر پسرک را می کشند لیدی مکداف نیز زاری کنان و زجه زنان می دود. و قاتلان نیز به دنبال او می روید. در برابر کاخ ادوارد پادشاه انگلستان مکداف و ملکم پسر دانکن استادند و مکداف به ملکم درباره اسکاتلند میگوید. اسکاتلند ویرانه است که هر بر خیل سوگوارانش افزوده می شود. تنها تیغ آخته می تواند اسکاتلند را از مکبس برهاند ملکم با خود میاندیشد که نکند زاری مکداف بازی مکبس باشد برای فریفتن و کشتنش و از مکداف میخواهد که نشانهای برای راستی خیش بیاورد مکداف که گویی خود را باخته است ناباورانه میگوید که تنها در اندیشه میهن است که خونخاری بر او فرمان میراند ملکم از او میپرسد پس چرا خانوادهاش را رها کرده مکتاف از اینکه ملکم درباره او چنین میاندیشد برمیآشوبد ملکم از مکداف میخواهد از او نرنجد که هرچه میکند برای حفظ خیش است و اضافه میکند بسیاری میخواهند که مرا در جنگ مکبس یاری کنند اما هرچه میاندیشم میفهمم که کسی چون من نمیتواند بر تخت پادشاهی نشیند زیرا شهوترانم و هیچگاه از میلم به زنان کاسته نمیشود مکداف به او میگوید که هرچند شهوترانی نکوهیده است اما در اندرون می تواند با زنان بسیار توسن شهوت خیش را رام کند و باز شاه بماند. مالک می گوید در من آزی سیری نیز هست و می خواهم هر چه زمین و جواهر در اسکاتلند است از صاحبانش بستانم و از آن خود کنم. مکداف نیز این بار برف تر به او می گوید آز شمشیر پادشاهان را به قصد خون مردم تیز می کند. با این حال سرزمین اسکاتلند فراخ است و تو میتوانی آتش آزاد را فرو بنشانی. ملکم میگوید من فضیلتی نیز ندارم. نخیشتن دارم. نه دادگر دارم. آیا سزاوار پادشاهی مکداف نیز میخروشد و فریاد زنان میگوید تو نه شایسته پادشاهی هستی و نه سزاوار زیستنی. بیچاره مردمانی که چشم به آمدنت دوخته بودند، تا بمانند پدرت برانان پادشاهی کنی. ملکم به مکداف میگوید گوید که او را با این سخنان میاز بوده است و او از این آزمون پیروز به در آمده است و می که مکبس تا کنون دست به نیرنگ های بسیاری زده تا او را به چنگ آورد و بکشد و همینک دانسته است که مکداف از شمار را آنان نیست و به مکداف میگوید که به کمک پادشاه انگلستان سپاهی برای یورش به مکبس گرد آورده است مکداف از این گفته شادمان می شود در این هنگام پزشکی از کاخ بیرون میآید آید. ملکم از پزشک می‌پرسد که پادشاه چه زمانی از کاخ بیرون میآید. پزشک به او می گوید که پادشاه در کار شفای بیماران است که پزشکان درمانی برای درتهایشان ندارند و اکنون بیرون میآید پزشک می, پزش می رود و ملکم از او سپاسگذاری می کند. فیرتزده فیردزاده می‌پرسد این چه بیماری است؟ و ملکم پاسخ می‌دهد این از های پادشاه است که بیماران درمانده را با دعا درمان می‌کند و او توانایی پیشگویی نیز دارد ملکم و مکتاف راست را می‌بینند که به پیش آنان می‌آید به او درود می‌فرستند و مکتاف از راست درباره اسکاتلند می‌پرسد راست می‌گوید مردم داغ بر داغ می‌افزایند و اسکاتلند دیگر نمادر مادر ما که گور ماست و زندگی نیک مردم گلی کوتاه است. مکداف و ملکم از این خبر اندوهگین میشوند مکداف حال خانواده را جویا می شود و راس کوتاه به او میگوید خوبند و سری رو به سوی ملکم میکند و به او میگوید در اسکاتلند مردم آمادند و با آمدن پادشاه زنان نیز خواهند جنگید ملکم از این خبر خورسند می شود و میگوید سپاهی رزماور اینک به فرمان اوست راس به ملکه میگوید ای کاش می توانستم خبر خوشحال کننده بدهم اما در سینم خبری سوزناک است مکداف میپرسد درباره چه کسانی راس پاسخ می دهد از این خبر همگان به جای اشک خون میبارند اما بیشتر از آن توست مکداف از او میخواهد زود خبر را بگوید و راس از فرجام خونین خانواده او میگوید مکداف از این خبر در هم می و خشم جانش را فرا می گیرد. هر بار میپرسد تا بفهمد درست شنیده است و هر بار روایت راس از فاجعه هلناکتر و سوزناکتر می شود. ملکم که خشم خروشان مکداف را می به او میگوید با انتقام در را درمان کن. مکتاف می آری. چنین خواهم کرد ولی از یاد نخواهم برد که چگونه و برای چه کسی کشته شدند من آنان را تنها و بی پناه رها کردم آیا آسمان پیکر خونینشان نشان را دید و صدای زدجه هایشان را دید و هیچ نکرد؟ سپس آرزو می کند که با مکوس روبرو شود و با او به ستی زد. ملکم از او می خواهد با هم به نزد پادشاه روند و به او بدرود گویند و سپاه را به سوی دژ مکبس ببرند در کاخ مکبس و در اتاقی پزشک و ندیمش با هم گفتگو می کند. پزشک به ندیمه می گوید که دو شب است که مراقب لیدی مکبس بوده است اما هیچگاه او از تخت بلند نشده است. و از او می پرسد که آیا او نیز چیزی ندیده است؟ ندیمه میگوید از آن هنگام که شهریار به نبرد رفته دیدم که بانو از تخت برمیخیزد می خیزد. کاغذی برداشته، و چیزی در می نویسد و همه این کارها را گویی در خواب می کند. پزشک شگفت زده می شود و از او می پرسد که آیا سخنی نیز می گوید؟ هرچند ندیمه به پرسش او پاسخه مثبت می دهد اما می گوید که لیدی مکبس سخنانی بر زبان جاری می کند که او نمی تواند آنها را بازگو کند. و هرچه پزشک پافشاری فشاری می کند ندیمه حرفی نمی زند. لیدی مکبس در برابر بهد پزشک و ندیمه شم به دست وارد اتاق می شود. بر تخت می نشیند و دستانش را برای شست و شو برهم می ساید. ندیمه پزشک می گوید او زمان بسیاری را صرف چنین کاری می کند. پزشک وا مانده است و نمی داند چه بگوید. لیدی مکبست ناگهان بانگ بر می دارد که لکه خونی دیگر لکه دیگر ترس چه ترسی چه کسی می تواند ما را بازخواست کند اما چه کسی می دانست این همه خون در بدن دارد پزشک دفتری بر دارد تا هرچه می شنود بنویسد لیدی مکبس ادامه می دهد همسر مکداف کجاست سرورم همه چیز را بر هم زدی پزشک از ندیمه می زودتر برود زیرا همکنون هم بسیاری چیزهایی شنیده که نباید لیدی مکبس همچنان از بوی دستان خونیش میگوید و بنکو که در خاک خفته و هر آنچه که به مکبس میگفت تا در عزم خود جزم گرده تا اینکه میخوابد ندیمه و پزشک هر دو افسوس میخورند و پزشک به او میگوید که لیدی مکبس به کشیش بیشتر نیاز دارد تا پزشک و دیگر کاری از او ساخته نیست. از ندیمه میخواهد که مراقب او باشد تا به خود آسیب نزند و سپس می با حالی آشفته از رازهای مگویی که در یک آن در پیش او گشوده شده است. در نزدیکی کاخ مکبس چهار مرد با جامعه رزم ایستادند. ایشان که از اشراف زادگان اسکاتلند هستند و نخست از یاران او بودند، از یاران مکبس اکنون میخواهند به سپاه مکداف بپیوندند آنان از حال پریشان مکبس میگویند که به دیوانگان میماند و امید دارند که سپاه مکداف این ستمگر را براندازد و از دلاورانی میگویند که در سپاه او هستند. اما میگویند که دانل بین در شمار آنان نیست. آنان منتظر رسیدن سپاه مکداف میمانند. در کاخ مکبس آشفته است و فریاد زنان می گوید دیگر به او از گریز لشکریانش نگویند که او از هیچ کس ترسی ندارد مگر آنکه جنگل برنام به راه افتد و سپس میافزاید ملکم کیست مگر او را زن نزاده است ارواحی که سرنوشت آدمیان را میدانند به من گفتند از هیچ چیز نترسم ناگاه، سربازی، رنگ پریده، نفس زنان به پیش مکبس میآید. و مکبس حالا آشفتهٔ او را مسخره می کند و به او میگوید مگر چه شده سرباز با همان حال به او میگوید ده هزاراند مکبس به او میگوید ده هزار چی گوساله سرباز پاسخ می‌دهد ده هزار سرباز انگلیسی هستند سر برم مکبس میقرد و به او دستور می‌دهد که از پیش چشمانش دور شود مکبس از ستین یکی از نگهبانان کاخ می از وضع دشمن بگوید و او همه گزارش های رسیده را تایید می کند. مکبس به او دستور می دهد جامعه رزمش را بیاورد و در درج بگردند و هر هراس سخن گفت به دار بیاویزند. ستین می رود و پزشک می آید. مکبس از حال همسرش می پرسد و پزشک از پریشان حالیه لیدی مکبس میگوید و اینکه دیگر از دست او کاری ساخته نیست. مکبس به او میگوید پس دانشت را پیش سگان انداز و در حالی که جامعش را میپوشد و برای ستیز فرمان میدهد، به پزشک میگوید کاش میتوانستی کشور مرانیز درمان کنی. مسحلی نمی نمیشناسی که شورش انگلستان را به درباره آنان چیزی نشینده ای. پزشک میگوید که تنها میداند سپاهی سترگا مکبس میگوید تا به راه افتادن جنگل برنام منیمنم. پزش می گوید اگر می توانستم از این جهنم به جه هم دیگر در پی هیچ سودی به اینجا نمی آمدم. مالکم، سیوارد، سردار انگلیسی و پسرش و همینطور مکداف، راس و لناکس و دیگر اشراف زادگان و یاران و سربازان به نزدیکی جنگل برنام می رسند. ملکم؟ به سربازان دستور می که هر یک شاخهی ببرد و با آن به پیش رود تا شمار لشکریان پنهان بماند و سربازان نیز اطاعت می کند سیوارد می گوید که به نظرش پیروزی بر مکبس آسان است مکداف نیز گفته او را تایید می کند و می گوید سربازانش گریختند و آنانی که ماندند گوش به فرمان مکبس نمی دهند سیوارد با آنها می گوید نباید دل به گمان ببندند و باید در جنگ چنان کنند در کاخ مکبس ستین و سربازان با تبل و درفش می رسند مکبس دستور می دهد که درفش ها را بر دیوار دژ بیاویزند و در کاخ بمانند که استحکامات دژ دشمنان را از گرسنگی و بیماری از پای در می ناگا صدای جیغ زنان شنیده می شود مکبس به ستین دستور میدهد که از واقع خبر بیاورد ستین میرود مکبس با خود می گوید دیگر نمی‌ترسم. روزگاری با شنیدن فریادی در شب جانم از ترس لبریز میشد و با داستانی هراسانگیز به خود میلرزیدم اما اینک که جام وحشت را نوشیده‌ام از هیچ چیز باکی ندارم ستین میآید و خبر مرگ لیدی مکبس را میآورد مکبس می گوید او روزی باید میمرد روز از پی روز آرام میآید تا لحظه فرجام برسد زندگی چیست؟ میدان بازی دیوان که پر جوش ولی پوش است. زندگی افسانهای ای به روایت روانپیشان است که پرخروش ولی بی است. در این هنگام پیکی به پیش مکبس می میآید و نمیداند چه بگوید؟ مکپس به او دستور می دهدد که حرف بزند و پیک میگوید که گویی جنگل برنام راه می رود. مکبست به اون میگوید ای پست لاف زن اگر راست نگفته باشی به دار می و اگر راست گفته باشی تو میتوانی با من چنین کنی که دیگر نه راه گریز مانده است و جای ماندن و مکبست دستور می که آماده پیکار شوند و شتابان میروند. سپاهیان ملکم و مکداف به نزدیکی کاخ می رسد. سربازان به امر ملکم شاخه ها را به کناری می اندازند و سرداران نقشه جنگ را مرور می کنند تا مکبس را تا شب در هم شکنند. مکداف نیز به سربازان دستور می دهد که در کرناها بدمند تا به دل سربازان مکبس ترسف کنند. درگیری آغاز شده است. مکبس در گوشه ای از میدان ایستاده است. با خود می گوید چون خرسی مرا به چوبی بستند و سگان را به جانم انداختند. چاره ای نیست باید با آنان آویزم کیست که از زن زاده نشده باشد که مرا بر زمین اندازد؟ پسر سیوارد سردار انگلیسی به قصد نبرد به پیش مکبس میآید و از مکبس میپرسد نامت چیست؟ مکبس پاسخ می دهد نامم بر تنت لرزه میاندازد. پسر سیوارد باز از او میپرسد و مکبس نام خود را می گوید. پسر سیوارد میگوید پلیدتر از این نام نشنیده بودم و بعد به مکبس حمله میبرد و مکبس در پیکار او را میکشد. سیوارد به ملکم مجده فتح دجرا میدهد. مکداف وارد کاخ میشود و به دنبال مکبس میگردد تا جان او را بگیرد و کینه خیش بجوید. مکبس در میدان نبرد میگوید چرا با دشنه خیش خود را بکشم. حالان که بسیارند کسانی که سزاوار زخمهای آنند. مکداف مکبس را میبیند و او را به رزم رویاروی میخواند مکبس به او میگوید که در این میدان تنها از او دوری می کرده اما اکنون که خون کسان مکداف از شمشیرش میچکد آماده است که با او بجنگد مکداف نیز به او میگوید که با شمشیرش پاسخش را خواهد داد با هم درگیر میشوند و در میانه نبرد مکبس به مکداف میگوید خود را میازار که اثر شمشیرد بر من بسانه اثرش بر هواست. زیرا تو نیز زاده یک زنی. مکتاف به او میگوید آن اهریمنی که از راز زندگی آگاه است، به تو نگفت که مکتاف را نابهنگام از رحم مادرش جدا کردند؟ مکبس به مکتاف میگوید که دروغ میگوید و میخواهد او را بفریبد. اما از او میخواهد که دیگر نجنگند. مکداف به او میگوید که خود را تسلیم کند. مکبس اما می گوید تا آخرین دم خواهد جنگید و هیچگاه به پادشاهی گردن نخواهد نهاد. نبرد ادامه می و مکبس کشته می شود. پس از شکست مکبس سرداران سپاه ملکم وارد کاخ می شوند و ملکم رو به دیگر سرداران می گوید کاش کسانی که اکنون در میان ما نیستند به سلامت به جمع ما بپیوندند. می میگوید برای هر پیروزی به ناشار باید برخی کشته شوند و تازه ما این پیروزی را ارزان به دست آورده‌ایم. مالم از یارانش وضع پسر سیوار و مکداف را جویا شود و راس خبر می‌دهد که پسر سیوار به دست مکبز کشته شده است. می می‌پرسد آیا زخم‌هایش از رو بود و پس از تایید راس سیوارت شادمان می‌شود که پسرش دلاورانه جنگی دست و پشت به دشمن نکرده. مکتاف با سر بریده مکبس به جمع آنان میپیوندد و به پادشاه درود میفرستد و میگوید که دوران آن ستمگر به پایان رسیده است همه با هم به ملکم پادشاه اسکاتلند درود میگویند صدای شیپور پیروزی شنیده میشود ملکم از همه سپاسگزاری می کند و به سرداران لقبی تازه میدهد و دستور میدهد آنانی که از ستم مکبس گریختند برگردند و گناهکاران را کیفر دهند و سپس از همه می‌خواهد که به بزم تاجگذاری او بپیوندند همه میروند و آهنگ شیپور شنیده می‌شود این هم نمایشنامه مکبس یکی از شاهکارهای ویلیام شکسپیر. حالا که مکبس رو شنیدید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که مکبس صرفا درباره فرد جاه‌طلبیه که در آخر هم به سزای اعمالش میرسه. کاملا هم درست این نتیجه گیری چون تم نمایشنامه اون تم کلاسیک و واحدش جاه‌طلبیه. تو تون حق میدم ممکنه هر آدمی که نمایشنامه اولین بار میبینه یا میخونه همین فکر رو بکنه اما من و امیر تحانی تو این دو سه ماه اخیر که روی خلاصه مکبس کار میکردیم و نمایشنامه رو چند بار خوندیم و های متعددی از مکبس دیدیم فهمیدیم که مکبس پیچیده تر از اونیه که ما فکر میکردیم صد, در صد هم بود فقط ما فرصت و اون موقعیتی رو پیدا نکرده بودیم که بیشتر بهش فکر کنیم بذارید با چند تا سوال مطلب رو روشن کنم. یکی از شخصیت‌های رازآلود نمایشنامه جادوگرا هستند، به ویچس که نقش اساسی رو همیفامی کنند و اولین جرقه های تحول شخصیتی مکبس رو میزنند. همچنین نماینده های شر در نمایشنامه هستند. حالا سوال اینه که دقیقاً جادوگرا چی‌اند؟ آیا توهم مکبس هستند یا نه؟ شکسپیر در دنیایی که خلق کرده جایی برای جادوگرا باز کرده پاسخ راست و اول به این سوالینه که جادوگرها توهم مکبثن یا شرارت نهفته شخصیت مکبست که درست در زمان غرور پیروزی جلوش سبز میشن کسایی که جادوگر رو این شکلی میفهمن میتونن دلایل مختلفی هم برای توجیه نظرشون از نمایشنامه بیارن مثلا مکبس در طول نمای اشتامه خیلی شخصیت متوهمیه دشنه پرنده میبینه روح بنکو رو میبینه و مواردی شبیه این یه چیزی هم من اضافه کنم به این پاسخ اول اونم اینه که بنکو هم اولین بار جادوگرها رو میبینه حواستون به این باش حالا بیایم یه جور دیگه و زاویه دیگه جادوگرها رو بررسی کنیم بیاید ببینیم که چقدر پیشبینی های جادوگرها درست از آب در اومده اینکه مکبس پادشاه و فرمان روای کادور میشه تا حدودی میتونیم بگیم که مکبس در تحققش عملیت داشته و زیاد پیشبینی عجیب و غریبی نبوده. ولی درباره راه افتادن جنگل چی یا درباره مکداف و چیزی که درباره زهدان زنان گفتند و کسی که میتونه برای خطر آفرین بشه. پیشبینی بعدی که جالب‌تره درباره پسران بنکو. هرچند اول به نظر میرسه که مالکم پسر دانکن به پادشاهی میرسه. اما اگر دقت کنیم جادوگرا دقیقا نمیگن که بعد از مکبس پسر بنکو پادشاه میشه و اگر باز بیشتر توجه کنیم این روالیه که در تفسیر همه پیشبینیهاشون هم برقرار بوده خلاصه که همه پیشبینیهای جادوگرا محقق میشه جز یه دونه که تعلیق ماجرا تو هیچ وقت نمیفهمیم که آیا پسران بنکو هم پادشاه میشن یا نه حالا بر فرض اینکه همه پیشبینیهای جادوگرا محقق بشه چه چیزی ثابت میشه اون وقت مشخص میشه که جادوگرا که نماینده شر هستند وجود عینی در جهان شکسپیر دارن و سرنوشت بشر هم به دست اونهاست و با این نتیجه مکبس خیلی هم آدم متوهمی نیست و اتفاقا از راز جهان که شر هولناک و سهمگینه آگاه شده و این یعنی نمایشنامه مکبس علاوه بر اینکه درباره یک شخصیت جاه طلب و مغروره و این پیام رو خیلی واضح می رسونه پیامی عمیق‌تر هم داره. با این نگاه، نمایشنامه مکبس به ما میگه که پیشران تاریخ همین نیروهای شر هستند. حالا تصمیم بر اینکه اینا نمادینن یا نه با شما و با مخاطب. هر کسی میتونه نتیجه‌گیری و برداشت خودش رو داشته باشه. بر حال نمایشنامه خیلی نمایشنامه مهم و بزرگیه. خیلی اون رو از دید لیدی مکبث بررسی می‌کنن، خیلی اون رو روایتی استارعی از تاریخ میدونن و همه اینا جای تفکر داره و این نگاه های متفاوت و برداشت های متفاوت خاصیت مخاطب در برخورد با یک اثر هنری هستن حالا شما هم حتما این قضیه فکر کنید و به ما بگید برداشت شما از مکبس چیه چه نکته توش بیشتر توجهتون رو جلب کرد و یا اینکه بگید با کدوم یک از این برداشت هایی که اینجا مطرح شد بیشتر موافقید در دنیای سینما، چهارت اختباس وفادارانه و معروف از مکبس ساخته شده. کارگردانانی که از مکبس اختباس کردن خودشون از آدم های خیلی مشهور و معروف و کاردرست تاریخ سینما به حساب میان. اون چهارت اختباس، مکبس ارسون بیلز 1948، سریر خون 1957، مکبس پولانسکی 1971 که جریان ساختنش رو توی اپیزودهای پولانسکی میتناید کاست. تعریف کردم. و جدیدترین مکبس هم مکبس جاستین کرزل که ساخته سال 2015 است من به شما دیدن مکبس پولانسکی و سریر خون کروسابا رو پیشنهاد میکنم پولانسکی تقریبا خود نمایشنامه رو به فیلم نامه تبدیل کرده و شما میتونید دیالوگ های شکسپیر رو بشنوید توی اون فیلم و سریر خون کروسابا هم یک اقتباس بسیار عمیق و العاده از مکبسه که مطمئنم از دیدنش پشیمون نم اقتباس کورساوا به اون برداشت دوم ما از جادوگرا خیلی نزدیکه امیدوارم که از نمایشتامه و توضیحات بعدش و قبلش لذت برده باشید و خیلی ممنون که تا اینجا همراه آخرین اپیزود فصل اول الف هستید اگر حمایت شما نبود، اگر حضور کسانی که به صورت کاملا داوطلبانه تو این ده ماه همراه من بودن نبود واقعاً الف به اینجا نمی رسید و من نمیتونستم این پادکست رو اینقدر منظم روز اول هر ماه منتشر کنم. اونم به مدت ده ماه. دو ماه پادکست الف اپیزودی منتشر نخواهد کرد و آبان آذر ماه اپیزود جدید نداریم. اما در شبکه‌های اجتماعی پادکست الف که آدرسشون در توضیحات اپیزود هست مطالب جانبی و تکمیلی ده دنمای اجتماعی که توی این فست کار کردیم رو منتشر می کنیم. پس برای با خبر شدن از تاریخ پخش و اپیزوت های فصل بعد حواستون به اینستاگرام، توییتر یا تلگرام پادکست الف باشه. اگر پادکست الف رو دوست داشتید و لذت بردید ازش اون رو برای دوستانتون بفرستید این تنها راه تبلیغ پادکسته و باعث افتخار ماست که شما بقیه رو تشویق کنید این دوازده اپیزود رو بشنوند. دیگه کسی که تا اینجا این قسمت رو شنیده به نظرم شنونده وفادار و ارزشمند پادکست الفه که ما افتخار داریم که مخاطب ماست ترجیح میدم اینجا واقعا اسم همه بچههایی که از اول با من کار کردن یه بار دیگه در این لحظات آخر فصل اول بهتون بگم و ازشون تشکر کنم یسنا، ندا، مهتیس، امیر، سعیده هستی و مریم کسایی بودن که یک قسمت یا دو قسمت از متن پادکست رو در این فصل خلاصه کردن و خیلی زحمت کشیدن و امیدوارم بتونیم که در فصل بعدی هم با هم کار کنیم دو تا اپیزود از این فصل رو خودم تدوین کردم و زحمت بقیهش روی دوش حامد و عرشی عزیز بوده که همینجا از هر دوشون بابت همراهی و همه کمک هاشون ممنونم باز هم دم همتون گرم تا دیماه 1399 که دوباره پادکست الف برگرده این نقش ماند از غلمت یادگار عمر